بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين بیندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله جل جلاله برا همه ما و شما توفیق نصیب بکنه که وقت بر شنیدن گبه حق و سخنای حق داشته باشیم و الله جل جلاله برا ما توفیق نصیب بکنه که هم حق بگوییم، هم حق بشنویم و هم به حق عمل بکنیم دوستای عزیز در برنامه امروزی نخست ای سوال مطرح میکنیم که چرا عقیده در قرآن و سنت میخوانیم؟ یعنی چرا عنوان درس ما هست که عقیده در قرآن و سنت؟ دوستای عزیز ای دلایل زیاد داره که ما هر یکی از دلایل خدمت شما تشریح تشریخات کردم بسم الله الرحمن الرحیم اولی دلیلش ای است که اصلا، قرآن کتاب عقیده هست ما مسلمان هستیم الحمدلله رب العالمین قبل از آمدن قرآن اعتقاداتی وجود داشت بله اعتقاداتی وجود داشت بعضی ها فکر میکردند قریشی ها که ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم پیروان اسمایل علیه السلام هستیم قرآشی ها اولاده ابراهیم و اسمایل بودن یهودیا فکر میکردن که ما پیروان موسی علیه السلام هستیم. نصرانی ها فکر میکردن ما پیروان عیسی علیه السلام هستیم. مشرکین حبشه هم و هر کسی به این عقیده و به این فکر بود که ما از پیروان یکی از پیغمبران هستیم و دین ما دین حق است. لکن قرآن از مشان بررسون فهمید کرد نه خیر. آن که شما تصور میکنین ای غلط است بخاطر از این که با گذشت زمان در کتاب تورات تحریف آوردین در انجیل تح... تحریف آوردین بعضی صحیفه مکمل گم کردین که در پیشتان نیست عقیده ابراهیم علیه سلام تغییر دو آوردین و حتی بودهای را در خانه که گذاشته بودن با وجود از که فکر میکردن که ما با عقیده ابراهیم هستیم از خود ابراهیم و اسماعیل علیه مسلم دو بود جور کرده بدن العیاص بالله و در داخل خانه کعبه گذاشته بودن به هر صورت الله جل جله بر اصلاح عقیده و بر اینکه انسان عقیده درست بفهمه کتاب فرستاد که او قرآن هست مشان است پس اگر یک انسان میخواهد که مسلمان موحد یک تا پرست با عقیده درست اسلامی باشه از کجا عقیده خود بگیره از قرآن بگیره پس چون اصل و اساس عقیده اسلامی قرآن ازی مشان است است ازی خاطر تا وقت ما به گمراهی نمیریم تا وقتی که قرآن ما از قرآن پیروی بکنیم و چون قرآن کتاب است که دو هیچ کسی تغییر و تحریف آورده نمیتانه و الله جل جلوه زمانت حفظ کرده که اینا نحنو نزلنا ذکره و اینا له حافظون الله جل جل میگه که ما قرآن نازل کردیم و ما رو حفظ میکنیم الله جل جل هو اینچه عظمت خدا نشان داده که سیغی جمع آورده و قوت خدا نشان داده که ما ذات قوی هستم که اگر کل دنیا یک طرف شوه و ذات یگانه الله جل جل طرف دیگه قرار داشته باشه، همه از اونا را نابود میکنن و الله جل جلو گفته که موره این قرآن حفظ میکنن پس قرآن حفظ شده، برای چی حفظ شده؟ بخاطر از ازی که وقت قرآن حفظ شد، عقیده حفظ میشه و وقتی که قرآن حفظ نمیشد، عقیده حفظ نمیشد تورات تحریف شد، عقیده هم امرائش خراب شد انجیل تحریف شد، عقیده هم امرائش خراب شد کتاب دیگه صحایف گم شدن عقیده خراب شده از بیندن پس تا روزی که مسلمان ها عقیده خود از قرآن بگیرن در راه پیغمبر در حرکت است در خط میرن که کل پیغمبر ها رفتن و روزی که مسلمان از قرآن منحرف شد به ایواز کتاب قرآن به ایواز کتاب عقیده که قرآن از مشهناس، کتاب‌های دیگر را جستجو کرد. خاص عقیده خدا از شعر و شعرا بگیره یا عقیده خدا از قصه‌ها و داستان‌ها بگیره یا قصه... عقیده خدا از روایت‌های تاریخی بگیره، در این صورت ای انسان با گمراهی میره. خاص عقیده خدا از فلسفه بگیره، خاص عقیده خدا از منطق بگیره، خاص عقیده خدا از اختلافات اعتقادی مردم بگیره، در این ای انسان چی میشه؟ گمراه میشه، بیراه میشه. پس عقیده درست اسلامی کدام یکی است؟ عقیده درست اسلامی امون است که عقیده از قرآن از ایمان شان گرفته شود. ما متاسفانه مردم عقیده خوده از هر چیز میگیرن معتذله چی گفت قدریه چی میگن جبریه چی میگن متکلمین چی میگن فلان فیلسوف چی میگن فلان ساینسدان چی میگن فلان فلانی میگن میشه که انسان بعضی اوقات، بعضی از دلایل، اقید، صحت عقیده و قوة عقیده در کجا هست در قرآن عزیم و است؟ از این خاطر، این قرآن عزیم و است که کتاب عقیده هست و الله جل جلوه او بر برما کتاب عقیده معرفی کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تمام صفات خدا و تمام آنچه که برای یک مسلمان در عقیده مهم است او در قرآن است از این خاطر دوستان عزیز باید عقیده خود از قرآن از مشان بگیریم از این خاطر ما نام برنامه خودا و نام درس خودا عقیده در قرآن و سنت گذاشتیم نکته نقطه ای است که کی قرآن خوب میفهمید و کی قرآن خوب میفهمه کی میتونه خوب مفسر قرآن باشه؟ کی میتونه که قرآن خوب تشریف و توضیح بکنه؟ کی میتونه که قرآن عزیم شانه درست من حیث معلم بردگرا برسانه؟ کی میتونه معلم ما باشه؟ الله جلاله جلهور بر ما معرفی کرده که لا اله الا الله محمد رسول الله پس محمد صلی الله علیه وسلم معلم ماست، رهبر ماست، اصوه ماست مفسر قرآن است برای بیان کردن قرآن و بیان دین آمده. از این خاطر آنچه که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما گفته بشرته که گفته های رسول الله صلی علیه و توسط علمای حدیث شناس نه توسط ای که هر, هر حدیثی را از هر کتابی و از هر جایی که آوردن چون احادیث ساختگی، احادیث موضوع احادیثی که پیغمبر او را نگفته بسیار زیاد است احادیث صحیحه که علما اورا علمای حدیث گفتن بله حدیث صحیح است پس ما عقیده خود از قرآن میگیریم و تشریح و توضیح از از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و آنچه که رسول الله برای صحابه کرام بیان کرده بود عقیده خود از او میگیریم آنچه که اونا به او عقیده داشتن همون اساس عقیده ما باشه پس ما معلم ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است از این خاطر ما عقیده در قرآن و سنت می خانیم. سیومین دلیلی که ما عقیده در قرآن و سنت می خانیم و ای است که الله جل جلوه خودش خدا بهتر معرفی کرده. خودش مخلوقات خدا بهتر مشناسه. الله جل جلوه ذات خدا و صفات خدا و عبادت خدا و تمام آنچه که فهمیدن از او و آنچه که مسلمان باید به با الله جل جلوه عقیده داشته باشه همه از او الله جل جلوه در قرآن عزیم مشان بیان کرده پس ما عقیده خود از کجا بگیریم؟ عقیده خود از کلام الله جل جلوه میگیریم تا الله جل جلوه که پروردگار ماست و ما می به شکل درست از قرآن عزیم بشناسیم ذاتشه صفاتش ا وحدانیتش هدف از خلقت اینمی ما مخلوقات که چرا خلق شدیم برای چی خلق شدیم آینده ما چی میشه جنت دوزخ سعادت بدبختی را تمام از ما از کجا میفهمیم از قرآن عظیم شان که کلام الله جل جلاله است ما چی میفهمیم که پیغمبرا چی نام داشتن کی ها بودن چی صفات داشتن عمی ازیرا الله جل خوب خوبتر میفهمه و الله جل جلوه هم را برا ما توضیح و تشریح کرده از این خاطر خوبی است که مسلمان عقیده خود از قرآن از شان بگیره نقطه دیگه که اسما الله و صفات الله و عبادات الله تخصیص عبادت ای همه توقیفی هست برد رو خواهر ایم محترم نوهای الله جل جله توقیفی هست چی مانه توقیفی هست؟ اون نامی که در قرآن و سنت برای الله جل جلوه ذکر شده ما همین نام و صفت به الله جل جلو حق داریم که بگیریم اما آیا ما حق داریم نام های دیگه از خود بسازیم؟ نمیتونیم. توقیفی هست آنچه که در قرآن و سنت آمده به با ما باید توقف بکنیم کسایی هست که نام ها را به 220 رساندن در حالی که 99 نام است و ای 99 نام در آیات قرآن و احادیث صراحتاً ذکر است ولی متاسفانه بسیاری کسا نام هایی را و صفات را به الله جل جل, جل نسبت میتن که الله جل جل, جل را خوش نداره پس اگر ما عقیده خدا از قرآن و سنت بگیریم از خرافات و از ای که ما تصرف بکنیم در نامها و صفات الله جل جل, جل, جل دور میشه ما عقیده در قرآن و سنت بخاطر خاطر می خوییم تا ای که احترامی که باید و الله جل جلوه شو در نامها و صفاتش و او احترام نهفته هست در قرآن عزیمشان و تا ای که دموت توقف بکنی از او روی نکنی نه افراد و نه تفرید بلکه راه مستقیمی که در قرآن است امور را در پیش بگیری ازی خاطر ما در قرآن و سنت میخواهیم و عقیده خدا مطابق قرآن و صنعت میسازیم قرآن هزیمشان و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم نقطه دلیل پنجمی دیگه یا دلیل پنجمی هست که عقل و حس یک اندازه کمک میکنه بله عقل یک نیمت است حس یک نیمت است وحی یک نیمت است لکن عقل و حس که درد انسان می خوره تا چی اندازه درد انسان می شما تصور بکنین که دروازه تکتک تک شد حس بر ما میگه که دروازه تکتک است تک بس حس سامعه بر ما خبر داد که تکتک تک در دروازه هست عقل بر ما میگه که اینمی دروازه که تکتک تک شده در عقب بزی کسی هست چرا این صدای تک تک بدون ازی که کسی ای دروازه را زده باشه ممکن نیست که ای صدا بیه. پس عقل ما میگه که بله در عقب دروازه کسی هست لکن آله بیه این پرسان بکنیم که در عقب دروازه کی هست اینجا یا تسلیمیست سه حالت است. یا تسلیم میشیم برای طفل خورد خود میگیم که برو بچیم بیبیده پش دروازه کی هست یا انکار میکنیم میگیم نه ای تصادفی یک تق بود ناق ای صدا آمد انکار میکنیم و یا ای که می خواهیم که در اینجا تصور بکنیم که کی خواهد باشه پشتو دروازه کاکایم است مامایم است استاد است شاگرد است کی است کی هست تصورات مختلف یکی میگه که پشت دروازه شادی هست یکی میگه در پشت دروازه گاو هست یکی میگه در پشت دروازه انسان دگی هست یکی میگه که در پشت دروازه حیوان است به این شکل کسایی که تصور کردن وقتی که میرن دروازه را باز میکنن که تمام تصوراتشان غلط است پس حس تا جای کار میکنن کار کرد دروازه را برما گفت که در پشت دروازه کسی هست تک تک است عقل ما گفت که حتما ای انسان است لكن هر دوشان گفتن که ما دگذی کده چون در مقابل ما دیوار قرار داره دروازه قرار دارن. پشت دیوار و پشت دروازه را نه حس و نا عقل میتونه بفاهمه تا یکی بر واسیلی دیگی پیدا نشکه اگر یک کمره را نصب بکنی که پشت سر دروازه را ببینه باز تلویزیون میتونه ببینه اگر کلکین نباشه شیشه باشه اما وقتی که دم روش بسته باشه میگه ما نایم فاهم پس امی علت است که حس تا یک اندازه کمک میکنه عقل تا یک اندازه کمک میکنه سومی مرحله مرحله وحی است که انسان موحد تسلیم میشه به قرآن ازی مشان که قرآن ازی مشان شان برای ما خبر میده که این جهان و این کائنات حس بر ما میگه که والله این دنیای که هست این سیاره ها را سیکو این نظام شمسی را سیکو این بزرگی زمین را سیکو این که مثلا سیاره ها چقدر ازیز زمین کرده بزرگتر هستن این افتاب این مخلوقات کلش ابر و با برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتار از معرفت کردگار پس وقت که انسان یک برگ میگیره و ای برگ مطالعه میکنه میبینه بالاخره که امین برگ کوچک یک درخت رو شما تصور بکنین که ده متر بلندی از درخت است 20 متر بلندی از درخت است. دمو آخرین برگ که داری درخت است همو آخرین برگ آب هم رسیده و تنفس هم میکنه و تغذیه هم میشه کدام واترپمپ های هستن که برازی از زمین آب تا آخرین 20 متر بالا اونجا می رسانه. پس برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار به این شکل دوستای عزیز ایناله حس کمک کرد که ما برگ دیدیم و فهمیدیم که برگ. عقل بر ما فاماند که این برگ وقتی که ده بیس متری از زمین بالا هست و در اوج تغذیه میشه. پس عقل میگه ذات هست که امی بر امی برنامه ریخته و امی ذات است که برای زیک غذاه شده میجه میرسانه لکن ای ذات کی هست؟ چه صفاتی داره؟ کی باید باشه؟ با کدام صفات باید باشه؟ ایره باز وحیه بر ما میگه از این خاطر مسلمان های یکتا است. از حس خود استفاده میکنن، از عقل خود استفاده میکنن و باز بالاخره در سیومین مرحله از وحی استفاده میکنن به خاطر عقیده اسلامی بر انسان که افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و السماء كيف رفعت و الجبال كيف نصبت چرا نظر نمیکن؟ نظر منظورش نظر چشم است. نظر کنین به طرف ابل شطر ساختمان فیزیکی شطر رسل کنین و به یک نر برین و پرسان کنین از اون ویترنار که وقتی که ای شتر چی خصوصیت های عجیب و غریب است میچه که انسان از ازو بگیره ده صفحه در باری اوصاف شتر انسان مطالعه بکنه افلا ینظرون ال الابلی کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت آسمان چقسم اقسم بلند شده و ال الارض زمینی که کربی شکل است در زیر پایی تو مثل یک سطح وار محلوم میشه انوار است بای خاطر وقتی که انسان با طرف از این چیزا نظر میکنه باز عقل برش میگه سبحان الله او خالقی کی شطره با این صفات خلق کرده به این آسمان و این زمینه و این مخلوقات خالق بسیار با عظمت لكن این خالق چه قسم بشناسیم باز بعد از او الله جل جلاله بر ما میگه که افلا یتدبرون القرآن چرا تدبر ده نمی نمیکنین که تمام ذات و صفات خالق و تمام آنچه که در این کائنات از ذری دنیا و دنیای دیگه هست کلش در قرآن عظیم شان است از این خاطر ما باذی که از حس خود استفاده کردیم و از عقل خود استفاده کردیم و به یخین کردیم که در عقب همین یک قلم تصور میکنیم آیا همین قلم میتونه تصادفی باشه ابدا آیه پوش از این تصادفی است اینجا یک که بسیار کوچک داره آه چرا چوری سوراخک است والا این سراخت به خاطر ازی است که کسی فکر کرده که این سوراخ نباشه این قلم اه اه هوا قید میشه و قلم قید میکنه پس سراخ گذاشتن این قسمت قلم هم تصادفی نبودن نوک چرا باریک است این هم تصادفی نیست چرا این سرپوشک در این قسمت شد این هم تصادفی نیست چرا تنها نیچن است این چیز دیگه پوش کلان است همه از کل ازیر آدم وقت کسل میکنن پس یک قلم تصادفی نیست. ای قلم در عقب ازی کسیست که ایرا ترمیم کرده و ساخته است و اینجا گفته که پس ای جهان آیا تصادفی است؟ تصادفی نیست بلکه ای جهان جهان است که ای کسی خلق کرده خالق ازی کی هست ای ما میتونیم که از قرآن هزیم استفاده بکنیم به ای خاطر؟ به خاطر ازی که در بیراه و خود غلام حیوانات نسازیم و خود اصل خوده ولقد کرمنا بنی آدم بنی شادی مبدل نکنیم خدا اولادای شادی نسازیم کرامت خدا حفظ بکنیم به این خاطر باید از قرآن از مشان استفاده بکنیم و عقیده خدا از قرآن بگیریم ششمی مثلا داخل نمودن فلسفه سبب سخت شدن عقیده میشه بسیاری کسا میخوان که عقیده خدا از طریق فلسفه بگیرن فلسفه چون یا به ماده و یا هم به بعضی آن ماتریالیست هستند، تنها با حس و چیزای مادی اکتفا میکنن و بازشان ایدئالیست هستند که به مسائل دیگه که مثلا با مسائل عقلی اکتفا میکنند لکن ما گفتیم حس و عقل نمیتونه به نتیجه برسانه از این خاطر دلایل فلسفی انسان در نیمه را هم میمانه باز اینجاست که فیلسوف بازشان کار میکنن و بازشان کافر میشن و بعضشان بیدین میشن به این خاطر ما مسلمان ها میگیم که فلسفه عقیده را سخت ساخته و کسانی که از طریق فلسفه میخواین به حق برسند و بسیار سختی ها جوهر است و عرز است و فلان است و فلان است کلمات عجیب و غریب که یک انسان عادی نمیتونه عقیده خدا درست بفامه عقیده عقیده توحید است در عقیده توحید و یکتا تو پرستی، این عقیده برای یک جوالی هم است که یک جوالی، یک بیثواد، یک انسان بسیار عادی هم این عقیده را بفهمه. از این خاطر، الله جل جلو برای ما قرآن از این مشان و این یسرنا القرآن ذکر، این قرآن برای ذکر، برای پن، برای ذکر ما از او عقیدی خدا بگیریم، بسیار آسان سخته الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آدم می فهمه که حمد و سنه و صفت خاص به الله است که رب العالمین است الرحمن الرحیم مالک یومینه و بسیار صادقی انسان میتنه و بسیار خوبی که عقیدی خدا از خاطر عقیده در قرآن و سنة میخنه ای که بسیاری در عقیده مثلا در کتابه عقیده مذاهب اهل کلام است ما یک وقت میخواندیم که اشعاری رو ایتو گفت ما تولیدی ایتو گفت جبری ای قسم میگه فلان متوزلی قسم میگه ایران موندیم که چی حالت است یا پروردگار کدا مزیره یقین بکنم گای شرق میبرد ما را غرب میبرد گاه شمال گاه جنوب لکن روزی که قرآن عظیمشان خواندیم و به آیات قرآن قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم له خاطر قرآن عظیمشان مستقیما عقیده را درس میته و های دیگه گای فلسفه و گای منطق و گای دلایل عقلی و گای دلایل نقلی و گای دلایل منکرین و گای دلایل مشبهه که تشبیه میکنن دلایل فلانی رنگ و رنگ، لاکن قرآن عظیم شان مستقیما اما اساس و سبتی عقیده را بر انسان می که قول هو الله احد الله السمد لم ولم یولد ولم یکن له کفو احد بر یک جوهلی که بگویی که عقیده چی هست برش بگویی که الله ذات یگانه هست فرزند نداره نیاز نداره به فرزند پدر نیاز نداره به پدر ما مخلوق هستیم به فرزند و پدر نیاز داریم الله نیازی نداره الله نیازی نیاز به شریک و همکار نداره ماستم که نمیتونم کارم تنها بکنم همیل این برنامه را ثبت میکنیم مجبور است با هیجان باشه فیلم بردار ما باشه موجب سبب گرداننده برنامه باشه استدیو باشه من به با همکاران نیاز دارم نمیتونم به کار بکنم اما الله جل جلاله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وقتی يا شاو میشه به خاطر قرآن عظیمشان عقیده را برای انسان مستقیما عقیده آسان و خوب و عقیده سچا و عقیده حقیقی را بر انسان میده از این خاطر ما عقیده در قرآن و سنت می خریم تا که از تشویش ها و شک هایی که از طرف بسیار مردمای مختلف در عقیده ایجاد شده از یا اجتناب کنیم و مستقیما از کلام رب العالمین عقیده خود بگیریم الله جل جله بر همه ما شما توفیق نصیب کنه که عقیده خود از قرآن ازی مشان و از احادیث صحیحه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم الله علیه و بگیریم و السلام علیکم و الله و برکاته